اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربل الناس حسابهم هم في حساب مردم به آنها نزدیک شده است در حالی که آنها در غفلت روی گردانند ما یأتیه من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه و هیچ پند ای از جانب پروردگارشان برای آنها نمیآید مگر آنکه بازیکنان به آن گوش می‌دهند لا هی قلوبهم و اسر نجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم اتاتون السحر وأنتم تبصرون در حالی که دلهايشان قافل و در لح سرگرم است و کسانی که ستمکار بودند پنهانی نجوا کردند و گفتند: آیا جز این است که او بشری مانند شماست؟ آیا به جادو روی می آورید در حالی که حقیقت را می بینید؟ قال ربي اعلم القول في السماء والارض و هو السمیع پیامبر گفت پروردگارم هر سخنی را که در آسمان و زمین باشد میداند و او شنوای داناست بل قالو اضاس احلام بل افتراه بل هو شاعر بلکه آنها گفتند آنچه او آورد خواب های آشفته است، بلکه آن را به دروغ به خدا افترا بسته است، نه بلکه او شاعر است. پس اگر راست می گوید برای ما موجزیبی بیاورد چون آن که پیام بران پیشین فرستاده شدند. ما آمنت قبلهم من قریت اهلکناها افهم یؤمنون پیش از آنها هیچ آبادی و قریه ای که آن را هلاک کردیم ایمان نیاورده بودند آیا اینها ایمان می آورند و ارسلنا قبلك الا رجالا فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون به ای پیامبر پیش از تو جز مردانی را که به آنها وهمی کردیم نفرستادیم پس ای مردم اگر نمیدانید از اهل کتاب بپرسید و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کنون خالدین و ما آنها را پیکرهایی که غذا نخورند قرار ندادیم و در دنیا جاوید هم نبودند ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمْ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ شَاءُ وَأَهْلَكْنَا سپس پس بعد عراق که به آنها داده بودیم راست گردانیدیم پس آنها به هر که را که خواستیم نجات دادیم و مسرفان را هلاک کردیم لقد انزلنا اليك كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون براستی به سوی شما کتابی نازل کردیم که آوازه و عزت شما در آن است آیا خرد نمی و کم قصرنا من قریت کانت ظالمتا و بعدها قوم چه بسیار شهرها ایراک ساکنانش ستمکار بودند در هم شکستیم و بعد از آنها قوم دیگری را پدید آوردیم فلما احسو بأسنا اذا هم منها يرکبون پس چون عذاب ما را احساس کردند ناگهان آنها از آنجا میگریختند لا ترکبوا و ارجعوا الى ما اطرفتم فیه و مساکنیکم لعلكم تسالون گفتیم فرار نکنید به سوی خانه هایتان و نعمت هایی که در آن آسوده بودید بازگردید باشد که باز خاست شوید قالو یا ویلنا اینا كنا ظالمین گفتند بای برما یقینا ما کار بودیم فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامد پس پیوست فریادشان این بود تا آنکه آنها را چون کشت درو شده خاموش ساختیم وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبین و ما آسمان و زمین و آنچه را که در میان آن دوست به بازی چه نیا فریدیم. لو اردنا انتخذ لهوان لتخذناه من لدنا كنا اگر میخواستیم که سرگرمی بگیریم همانا آن را از نزد خودمان بر اگر چون این کاری می‌کردید بل نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغَهُ فَإِذَا هو زَاهِقٌ ولكم الويل مما تصفون بلکه ما حق را بر باطل می افکنیم پس آن را در هم می و ناگاه آن باطل نابود می شود و وای بر شما از آنچه توصیف میکنید وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون و هر کس که در آسمانها و زمین است از آن اوست و آنان که نزد او هستند هیچگاه از عبادتش سرکشی نمی کنند و هرگز خسته نمی شوند یسبحون اللیل و النهار لا یفترون شب و روز تسبیح میگویند سستی نمیورزند من الارض هم ينشرون آیا آنها معبودانی از زمین برگزیده اند که آنها مردگان را برمیانگیزند لو كان فیهما لهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون اگر در این دو معبودانی جز الله بود مسلما هر دو تباه میشدند و نظام هستی به هم میخورد پس منزه است خداوند پروردگار عرش از آن چه آنها توصیف میکنند لا یسالون عما یفعلون وهم او از آن چه میکند باز خواست نمی شود و با آنان باز خواست میشوند امتخذو من دونه الها قل هاتو هذا ذکر من آیا به جز او معبودانی را برگزیده اند؟ بگو دلیلتان را بیاورید این پند کسانی است که با من هستند و پند آنان که پیش از من بودند بلکه بیشتر آنها حق را نمیدانند لذا آنها از آن روی گردانند و ما ارسلنا من قبل که من رسول نوحی نُوحی اِلَيْهِ لا لَا إِلَهَ إِلَّا اَنَفَعْبُدُونَ و ما پیش از تو هیچ پیام بر نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم که معبودی جز من نیست پس تنها مرا عبادت کنید وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون فگفتند خداوند رحمان فرزندی برگزیده است او منظه است بلکه آنان بندگان گرامی او هستند لا یسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون هرگز در سخن بر او پیشی نمیگیرند و به فرمان او کار می کنند یعلم ما بین و خلفهم ولا من خداوند آنچه که در پیش روی آنهاست و آنچه که پشت سر آنهاست میداند و آنها جز برای کسی که خداوند از او خوشنود باشد و به پسندت شفاعت نمی کنند و آنها از ترس او بیناکند و من یقل منهم انی اله من دونه فذالک نجزیه جهنم كذلك نجزی الظالمین و هر کس از آنها بگوید همانا من به جای او معبود هستم پس سزای چنین کسی را جهنم میدهیم و ستمکاران را اینگونه سزا می دهیم اولم یرالذین كفروا ان السماوات والارض کانتا رسقا ففتقناهما و من الماء كل شيء حي افلا آیا کسانی که کافر شدند ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند پس ما آنها را از یک دیگر باز کردیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم آیا ایمان نمی آورند؟ و جعلنا في الارض رواسی أن تمید بهم و جعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون و در زمین کوه های استوار قرار دادیم که مبادا آنها را بلرزاند و در آن راه گشاده گشاد قرار دادیم باشد که آنان راه یابند و جعلن السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها مخربون و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم و آنها از آیات آن روی گردانند وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون فاو كسيس که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید هر یک در مداری شناورند وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد و پیش از تو ای پیام برای هیچ بشری جاودانگی قرار ندادیم آیا اگر تو بمیری پس آنها جاوید خواهند بود کل نفس و نبلوکن بی شر و الخیر فتنتا و ایلینا ترجعون هر کسی چشنده مرگست و شما را به بدی و نیکی آزبایش می کنیم و به سوی ما بازگردانده می شوید و اذا الذين كفروا يتخذونك الذي يذكر الذي يذكر آله وهم بذكر الرحمنهم كافون. و کسانی که کافر شدند، هنگامی فقط تو را به ریشخند میگیرند و میگویند آیا این همان کسی است که معبودان شما را به بدی یاد میکند در حالی که خودشان یاد خداوند رحمان را انکار میکنند قل قل من عجل ساریکم آیاتی فلا تستعجلون انسان از شتاب آفریده شده به زودی آیات خود را به شما نشان خواهیم داد پس شتاب نکنید و میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت کی خواهد بود لو يعلم الَّذِينَ كَفَرُوا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون اگر کسانی که کافر شدند می‌دانستند زمانی که قیامت فرا رسد نمی‌توانند شعله‌های آتش را از چهره‌هایشان و نه از پشت‌هایشان باز دارند و نه کسی آنها را یاری می‌کند چون این نمی‌گفتند بنتئیم بغته فتبهتهم فلا یستطیعون ردها ولا هم بلکه حق این است که آن ناگهانی به سراغشان می آید پس مبهوتشان می کند آنگاه نمی توانند آن را دفت کنند و نه به آنها مهلت داده شود. و لقد افتهزی من قبل کفحاق باللزین سخرون هم ما کانو بهی و به راستی به پیام بران پیش از تو نیز استهزا شد پس آنچه را مسخری میکردند از عذاب الهی دامان کسانی از آنها را که مسخره میکردند گرفت و هلاک شدند قل من باللیل و النهار من الرحمن؟ بل هم عن ذكر ربهم معرضون ای پیامبر بگو چه کسی شما را در شب و روز از عذاب خداوند رحمان نگاه می‌دارد بلکه حق این است که آنها از یاد پروردگارشان روی گردانند ام لهم اله تمنعهم من دوننا لا نصر انفسهم ولا هم آیا آنها معبودانی دارند که می توانند آنها را در برابر عذاب ما حفظ کنند و باز دارند آنها نمی توانند خودشان را یاری دهند و نه آنها از عذاب ما محفوظ هستند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 بلکه ما آنها و پدرانشان را از نعمت‌های دنیوی بهره‌مند ساختیم تا اینکه عمرشان به درازا کشید و مغرور شدند. آیا نمی‌بینند که ما پیوسته به سراغ سرزمین کافر می‌آییم که آن را از اطراف و دامنههایش می‌کاهیم؟ آیا آنها پیروزند یا ما؟ قل این اینما انذرکم بالوحی ولا یسمع صم الدعاء اذا ما ینذرون ای بر بگو من تنها شما را به وحی حشتار می دهم و کران هنگامی که حشتار میشوند شوند ندارانه می مستهم من عذاب ربك يا ویلنا يا ویلنا انا اگر شمئی از عذاب پروردگارت به آنها برسد قطعا خواهند گفت ای بای بر ما بیگمان ما همه گیست کار بودیم و نضع الموادین ليوم یوم فلا تظلم نفس شيئا وإن كان کانم از طال من خربل اتینا بها و و ما در روز قیامت ترازوهای عدل را می نهیم. پس به هیچ کس هیچ ستمی نمی شبد. و اگر عملی به مقدار سنگینی یک دانی خردل باشد آن را به حساب میآوریم و حسابرسی ما کافی است و لقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و لل للمد... و به راستی به موسی و هارون فرقان و روشنی و پندی برای پرخیزگاران دادیم الَّذین ربهم و هم من همانا کسانی که در نهان از پروردگارشان گارشان و آنان از قیامت بین دارند و هاذا بكم مبارک انزلنا، افأتم له ممكن. و این قرآن پند مبارکی است که ان را نازل کردیم. آیا شما ان را انکار می کنید؟ ولقد آتينا ابراهيم رشدم من قبل وكم. نبی به به ما پیش از این به ابراهیم رشد را دادیم و به حال او آگاه بودیم اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون چون به پدرش و قومش گفت این مجسمه ها چیست که شما به پرستش آنها دل نهادید؟ قالوا وجدنا آبا گفتند ما پدران خود را پرستش کنندگان آنها یافتیم قال لقد كنتم انتم و ءكم في ضلال من. ابراهیم گفت به راستی شما و پدرانتان در گمراهی آشکار بوده اید قالو اجئتنا بالحق ام انت من گفتند آیا برای ما سخن حق را آورده ای؟ یا تو از بازی قَالَ بَرْرَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرْهُنَّ وَأَنَ عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ گفت بلکه پروردگار شما پروردگار آسمانها و زمین است آنکه آنها را پدید آورد و من بر این سخن از گواهانم و تالله أَصْنَامَكُمْ اصنامكم بعد ان تولو مدبرین و گفت به خدا سویند بعد از آنکه پشت کنم روی به گردانید برای نابودی بودهای شما تدبیری خواهم اندیشید فجعلهم لهم الا كبيرا لهم لعلهم اليني يرجعون پس در قیاب بت پرستان همه آنها جزءت بزرگشان را قطعه قطعه کرد باشد که به سوی او باز گردند قالوا من هذا بآلهتنا لمن که به بدخانه آمدند و دیدند گفتند هر کسی که با خدایان ما چنین کرده است مسلما او از ستمکاران است قالوا سمعنا فتي یذکرهم يقال لهم ابراهیم ادعی گفتند شنیدیم جوانی که او را ابراهیم میگویند بت‌ها را به بدی یاد میکرد قالوا فأتو به علی الناس گفتند پس او را در برابر دیدگان مردم بیاورید باشد که آنها گواهی دهند قالوا أأنت هذا بآلهتنا هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند گفتند ای ابراهیم آیا تو این کار را با خدایان ما کردی قال بل کبیر هذا فاسالهم این كانوا گفت بلکه این بزرگشان این کار را کرده است پس از آنها بپرسید اگر سخن می فرجعوا الى انفسهم انكم انتم الظالمون. آنگاه آنها به خود باز گشتند پس گفتند بیگمان شما خود ستمکار هستید لقد سپس سر به زیر انداختند و گفتند مسلما تو میدانی که اینها سخن نمیگویند قَالَ افتعبدون من دون الله اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا ولا ابراهیم گفت آیا به جای الله چیزی را می كه که هیچ نفعی برای شما ندارد و نزیانی به شما میرساند؟ رساند؟ افل لكم تعبدون من دون الله افلا تعقلون اخف بر شما و بر آنچه جای الله میپرستید آیا نمی اندیشید قالوا هل نقوه وانصروا الهتكم ان کنتم فاعلین گفتند او را بسوزانید و معبودان خود را یاری کنید اگر کننده کاری هستید. قلنا یا نار و سرانجام آنها او را به آتش انداختند ولی ما گفتیم ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش. و آرادو بهی فجعلناهم و آنها خواستند برای نابودی او نیروگی پس آنها رازیان کارترین مردم قرار دادیم. و نجینا الى إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمین و او و لوت را به سرزمینی که در آن برای جهانیان برکت دادیم نجات دادیم. و وهبنا له اسحاق و يعقوب نافله و کلن جعلنا صالحين. و اسحاق و ابزون بر او نو عشی عقوب را به او بخشیدیم و همه آنها را شایسته قرار دادیم. وجعلناهم أئمتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. و آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند و انجام کارهای نیک و برپاداشتن نماز و عدای زکات را به آنها وحی کردیم و آنها همه عبادت ما بودند. ولوطن آتيناه حكم و علما و من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسدين.الوطن راه حکمت و دانش دادین. و او را از شهری که مردمانش اعمال زشت و پلید انجام می دادند، نجات دادیم بیشک آنها مردم بد فاسقی بودند و ادخلناه فی رحمتنا نه من الصالحین و او را در رحمت خود داخل کردیم بیگمان او از صالحان بود و نوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناه و هو من الكرب العظیم به ای پیامبر نوح را به بر هنگامی که پیش از آن ما را نداداد پس ما دعایش برای او اجابت کردیم آنگاه او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم ونا صناهم القوم قومَّنا كذبوا بآياتناِ هم كانوا قوم فقنا هم جمععیم و او را بر قومی که آيات ما را تکزیب کرده بودند یاری دادیم بیگمان آنها قوم بدی بودند پس همه آنها را غرق کردیم. و داوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم اذ نفشت فيه غنم القوم وكن شاهدين و داوود و سليمان را بی آور هنگامی که در باری کش زاری که گوسفندان قوم شبانه در آن چریده بودند داوری می کردند و ما بر حکم آنها شاهد بودیم ففهمنا سلیمان و کلا آتینا حکما و علما و تخفرنا مع داود الجبال يتبحنا والطير و کنا پس آن را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از آنان حکمت و دانش عطا کردیم و کوه ها و پرندگان را با داوود مسخر ساختیم که همراه او تسبیح می گفتند و ما این همه را انجام دادیم وعلمناه صنعت لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاکرون و ساختن زره را به خاطر شما به او آموختیم تا شما را از آسیب جنگ هایتان محفوظ دارد پس آیا شوهر گذار هستید تولیمان الریح عاصفة تجری بأمره الى الارض التي بارکنا فيها و کنا بكل شیء عالمین و تندباد را مسخر سلیمان کردیم که به فرمان او به سوی سرزمینی که در آن برکت دادیم حرکت می کرد و ما بر هر چیز آگاهیم و من من یغوصون له و و کننا لهم حافظین و از شیاطین کسانی را مسخر کردیم که برایش غواسی می کردند و کارهای غیر از این نیز انجام می دادند و ما حافظ آنها بودیم و انی مسنی الضر و ارحم بهی پیام بر. ایوب را یاد یادآور هنگامی که پروردگارش را نداداد رنج و بیماری به من رسیده است و تو مهربان ترین مهربانانی فاستجبنا له فکشفنا ما به من وآتيناه اهلهم ومثلهم معهم وآتيناه اهلهم ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذکرا للعابدين پس ما دعای او را اجابت کردیم و رنج و ناراحتی که داشت برطرف ساختیم و خانواده اش و نیز همانندشان را با آنها به او باز گرداندیم تا رحمتی از جانب ما و پندی برای عبادت کنندگان باشد و اسماعیل و ادریس و ذلکفل من الصابرین و اسماعیل و ادریس و ذلکفل را بیاد آبرد که همه گی از صابران بودند و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحين. و ما آنها را در رحمت خود بارد کردیم بیگمان آنها از صالحان بودند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 هنگامی که خش میگین از میان قومش رفت پس چنین پنداشت که ما هرگز بر او تنگ نمیگیریم، پس وقتی که در شکم ماهی فرو رفت در تاریکی ها نداداد که خداوندا هیچ معبودی جز تو نیست تو منزهی بیگمان من از ستم کاران بودم فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک المؤمنين. پس تو آیه او را اجابت کردیم و از اندوه نجاتش دادیم و این گونه مؤمنان را نجات میدهیم. و زکریه نادا ربه ربی لا تذرنی فردا و انت و زکریه را بیاد آورد هنگامی که پروردگارش را نداداد پروردگارا مرا تنها مگذار و تو بهترین بارسانی فاستجبنا له و وهبنا له یحیا و له زوجا اینهم كانوا یسارعون في الخیرات و رغبا و رهبا. و پس دعای او را اجابت کردیم و یحیی را به او بخشیدیم و همسرش را بعد از آنکه نازا بود برای شایسته و آماده بارداری گردانیدیم بیگمان آنها همواره در کارهای خیر می شتافتند و در حال بیم امید ما را می و پیوسته برای ما فروتن بودند وَالَّتِ احصنت فرجها فَنَفَخْنَا فِيهَا من روحنا وجعلناها وَجْعَلْنَاهَا وَبَنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ بهی ای پیامبر به یاد آبر زنی را که شرمگاهش را پاک نگاه داشت پس ما از روح خود در آن دمیدیم و او و فرزندش را نشانهای برای جهانیان قرار دادیم این ها به امتکم امتا واحدتا و انا ربکم فعبدون بی تردید این است آین شما که آین یگانه است و من پروردگار شما هستم پس مرا پرستش کنید وَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون. و گروهی از پیروان انبیا در میان خود در امر دینشان فقه فرقه شدند همگی به سوی ما باز می‌کردند یعمل من, من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران له پس کسی که از کارهای شایست شایسته انجام دهد در حالی که مؤمن باشد کوشش او ناسپاسی سپاسی نخواهد شد و بیگمان ما اعمالش را برایش می‌نویسیم وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون. و مردم هر شهری را که بر اثر کفر و گناه آن را هلاک کردیم محال است که به دنیا باز گردند حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من تا وقتی که صد یعجوج و معجوج گشوده شود و آنها از هر تپه و بلندی شتابان سرازیر کردند. گردند وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصه ابصار الذین كفروا یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمین و بعدی حق نزدیک شود پس در آن هنگام چشم های کسانی که کافر شدند از وحشت خیره ماند گویند ای بر ما. از این واقعه در غفلت بودیم بلکه واسطم کار بودیم اینکم و ما تعبدون من دون الله حظب جهنم انتم لها واردون یقینا شما و آنچه به جای خدا میپرستید هیزم جهنم هستید شما در آن وارد خواهید شد لو كان وكل اگر اینها معبودانی برحق بودند هرگز وارد آن نمیشدند و آنها همگی در آن جابدان خواهند ماند لهم فیها دخیر و فیها لا يسمعون برای آنها در آن ناله های درد ناکیست و آنها در آن چیزی نمی شنوند الذین سبقت لهم من الحسن به کسانی که پیش در از سوی ما وعده نیکویی برای آنها مقرر شده است، آنها از آن دور نگاه داشته میشوند می شوند. آنها حتی صدایش را نمی شنبند. و در آنچه دلشان بخواهد جاودانه هستند لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم هذا بزرگ قیامت آنها را اندوهکی نسازد و فرشتگان به استقبالشان آیند گویند این همان روزتان است که به شما وعده داده میشد یومنا طول السماءك للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدنا علينا ان كنا فاعلين روزیك آسمان را چون تو ماری نوشته شده در هم می پیچین همان گونه که نخستین آفرینش را آغاز کردیم دیگر بار آن را باز می‌گردانیم این وعدهای بر ماست قطعاً آن را انجام خواهیم داد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرسها عبادی الصالحون و به راستی بعد از ذکر در زبور نوشتیم که сами را بندگان صالح من به ارث راهند برد این نه فی هذا لبلاغا لقوم عابدین بی گمان در این امر برای گروه عبادت کنندگان پیام روشنی است و انا ارسلناک الا رحمه للعالمین تورا جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم قل انما یوحی الی انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون بگو تنها به سوی من وحی میشود كه همانا معبود شما معبود یگانه است پس آیا شما تسلیم میشوید؟ فإن تولوا فقل ادنتكم على سواء وان ابري اقريب ام بعيد ما تعدون پس اگر باز رویگردان شوند بگو من شما را یکسان آگاه کردم و نمیدانم آنچه که به شما عد داده می شود نزدیک است یا دور. این بیشک او سخن آشکار را میدانند و نیز آنچه را در دل خود کتمان می کنید می داند. و, ادری لعله لكم و, الى حين. و من نمیدانم شاید این تأخیر عذاب برای شما آزمایشی و بهرهمندی تا مدتی معین باشد. قال رب حکم بالحق و ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون و پیامبر گفت ای پروردگارا به حق داوری کن و پروردگار ما خداوند رحمان است که از او استمداد می شود در برابر آنچه شما بیان میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم یا ای مردم از پروردگارتان بترسید بدون شک زلزله قیامت حادثه عظیمی است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 روزی که آن را میبینید، هر مادر شیر دهی، کودک شیر خارش از یاد خود میبرد و هر زن بارداری بار خود را بر زمین میگذارد و مردم را مست میبینی در حالی که مست نیستند ولی لیکن عذاب خدا شدید است. و من الناس من يجادل في الله بغیر علم و يتبع كل شيطان مرید و بعضی از مردم بدون هیچ علم و دانشی در باری خداوند به مجادله برمیخیزند و از هر شیطان سرکشی پیروی میکنند کتاب علیه انه من تولاه فانه يضل ويهديه الى عذاب السعیر در قضای الهی بر او نوشته شده که هر کس با او دوستی کند مسلما او گمراهش میکند و او را به عذاب آتش سوزان جهنم می کشاند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 وترى تر الارض هامدتا فا اذا انزلنا علیه الماء اهتزت وربت ربت و اهتزت و ربت و من كل زوج بهيج أي مردم اگر از برنگی شدن در شکل هستید پس به این نکته دقت کنید همانا ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه و بعد از خون بسته شده، سپس از مزغه شکل یافته و شکل نایافته، تا قدرت و حکمت خود را برای شما آشکار سازیم، و هرچرا که بخواهیم تا زمانی معین در رحم ما آن نگه می داریم، آنگاه شما را به صورت طفل بیرون می آوریم. سپس تا به حد رشد خود برسید و از شما کسی هست که می میرد و از شما کسی هست که به نهایت فرتودی باز برده می شود تا آنکه پس از علم و دانش چیزی نداند و زمین را خشکیده می میبینی پس هنگامی که آب باران بر آن فرو فرستین به حرکت در میآید و رشد کند و از هر نوع گیاه زیبا و خرم برویاند لذلك بأن الله هو الحق و انه يحيي الموتى و على كل شيء قدير این به خاطر آن است که بدانید خداوند حق است و آنکه او مردگان را زنده میکند و آنکه او بر هر چیز تواناست و ان الساعة آتیت لا ریب فيها و الله يبعث من في القبور و آنکه قیامت آمدنیست شکی در آن نیست و آنکه خداوند همه کسانی که در گورها هستند برمیانگیزد انگیزد و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب از مردم است که بدون هیچ دانش و هیچ هدایت و کتاب روشنی بخشی در باری خدا مجادله می کند تانیعق فیهی لیضل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی و ندیقهو یوم القیامت عذاب الحریق تکبر کنان پهلو و گردن خود را می پیچد تا مردم را از راه خدا گمراه سازد برای او در دنیا رصفایی است و روز قیامت آتش سوزان را به او میچشانی. لالك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. به او میگوییم این کیفر در برابر چیزی است که دست هایت از پیش فرستاده است و بیگمان خداوند هرگز به بندگان ستم نمی کند. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى که خدا را بر کنار با تردید می‌پرستد و ایمانش بسیار ضعیف و سست است. پس اگر خیلی به او برسد دلش به آن آرام میگیرد و اگر بلایی برای آزمایش به او برسد رو میگرداند و به کفر باز می گردد. در دنیا و آخرت زیان کرده است این همان زیان آشکار است. یدعو من دون الله ما لا یضره وما لا ینفعه ذلك هو الضلال البعید او بهجای خدا چیزی را میخواند که نه زیانی به او میرساند و نه سودی به او میبخشد این همان گمراه دور است دعو لمن ره و قرب من نفعه لبئس المولا ولبئس العشیر او کسی را می که زیانش نزدیک تر از نفعش است چه بد سرپرست و یاوری است و چه بد همدم و معاشری است إن <میدن> الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد بيغمان خداوند کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام داده به باغ از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر درختان آنجاری است مسلما خداوند آنچه را می خواهد انجام میدهد. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والاخره فلیمدد بسبب الى السماء ثم من يقطع فلينذد بتباب الى السماء ثم يقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يغيم کسی که گمان میکند که خداوند او را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد و بدین خاطر عصبانی است پس ریسمانی به سخت خان اش بیاویزد و خود را حلقا کند سپس آن را قد کند، آنگاه بنگرد، آیا این تدبیرش خشم او را از میان خواهد برد؟ و کذالک انزلناه آیات بینات و الله یهدی و اینگونه ما آن را به صورت آیات روشن نازل کردیم و بیگمان خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند. این‌الذین آمنوا و الذین هادوا و الصابیون و النفار و المجوس و الذین يفصل بينهم يوم القيامه ان الله علی كل شيء شهید. یقینا کسانی که ایمان آوردند و کسانی که یهودی شدند و صابعان و نصارا و مجوس و کسانی که به خدا شرک آوردند خداوند در میان آنها روز قیامت داوری میکند کند بیگمان خداوند بر هر چیز گواه است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 و حق علیه العذاب ومن من یهن الله فما له من مكرم این الله یفعل ما یشا آیا ندیدی که هرکس در آسمانها و هرکس که در زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم برای خدا سجده می کنند و بسیارند که فرمان عذاب بر آنها تحقق یافته است و هر را خدا خار سازد پس کسی او را گرامی نخواهد داشت بیگمان خدا بند هر چرا بخواهد می کند خصمان اختصمو فی ربهم الَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ من النَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ این دو گروه دشمنان یکدیگرند در باری پروردگارشان ستیز و خصومت کرده‌اند پس کسانی که کافر شدند لباس‌های از آتش برای آنها بریده شده است از بالای سرشان آب سوزان ریخته می‌شود که آنچه در درونشان است و نیز پوست‌هایشان با آن گداخته می‌شود و مقامع من حدید و برای زدن آنها گرزهایی از آهن داغ است كلما ارادو ان یخرجوا منها من غم من فیها اعیدو فیها و ذوقو عذاب الحریق هرگاه بخواهند از شدت اندوه از آنجا خارج شوند به آن باز گردانده می و به آنها گفته می شود عذاب سوزان جهنم را بچشید این الله یدخل الذین آمنوا و الصالحات جنات جنات تجری من تحتها ها الانهار یحلون یحلون فیها من اتاور من ذهب و لقلعه و لباتهم فیها حریر بیگمان خداوند کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایست انجام داده اند به باقهای از بهشت وارد می کند که از زیر درختان آن نرحا جاری است در آنجا به دستبند های از طلا و مروارید آراسته میشوند و لباسشان در آنجا ابریشم است. و هدوء الى الطیب من القول و هدوء الى صراط و به سوی گفتار پاکیزه هدایت میشوند و به راه خداوند ستوده راهنمایی میگردند این الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواءا ان العاكف فيه والباد ومن يرد فيه نُذِقُهُ بظلم نذقه من عذاب اليم شدند و مردم را از راه خدا باز می‌دارند و همچنین از مسجد الحرام که آن را برای همه مردم یکسان قرار دادیم چه مقیم در آنجا و یا وارد بر آن و کسی که از روی ستم در آنجا کجروی و انحراف از حق را بخواهد از عذاب دردناک به او می چشانیم.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 زمانی را که جای خانه کعبه را برای ابراهیم تعیین کردیم و گفتیم چیزی را شریک من قرار مده و خانه مرا برای تواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع و سجود کنندگان پاک گردان و اذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ مردم به حج ندا بده تا پیاده و سوار بر هر مرکب و شطور لاغری از هر راه دوری به سوی تو بیایند لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تا شاهد منافع گناهون خیش باشند و در روزهای معیم به هنگام قربانی نام خدا را بر چهار پایانی که به آنها روزی داده ایم یاد کنند پس از گوشت آن بخورید و بینوای فقیر را نیز اطعام کنید ثمقوب و تفسه هم ویوفون و نورراهم والیابفو سپس باید آلودگی را برطرف سازند و به نظرهای خود وفا کنند و بر گرد خانی کون سال کعب تواف کنند. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُسْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الْرِّجْفَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حاکم این است به و حرمت نهادهای خدا را بزرگ دارد پس این کار پروردگارش برای او بهتر است و چهار پایان برای شما حلال شده مگر آنچه بر شما خوانده می شود پس از پلیدی بدها اجتناب کنید و از گفتار باطل دوری کنید تو نفر در حالی که بِ وَمَ مِنَ مكان و مخلص خدا و شریک نیاورندگان به او باشید و کسی که به خدا شرک آورد پس گوی از آسمان سقوط کرده است آنگاه پرندگان گوشت خار او را می یا باد او را به جایی بسیار دور پرتاب می ذالک و من شعائر الله فان من حکم این است و کسی که شعائر الهی را بزرگ دارد پس بیگمان این کار از پرهیزگاری دل هاست لکن فيها منافع الى اجل مسمن ثم محلها الى البيت العتیق. در آن چهار پایان قربانی تا زمان مؤین برای شما منافع و بحرهاست پس قربانگاه آن خانی کوهنسال کبه است ولی كل امت جعلنا من سکل یذکر اسم الله على ما رزقهم بهیمت الانعام فا اله کم اله واحد فله و بشیر و برای هر امتی رسم قربانی دادیم تا نام خدا را به هنگام زب بر چهار پایانی که روزیشان کرده است ببرند فس معبود شما معبود یگانه است همه برای او تسلیم شوید و به فروتنان بشارده الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِنْ ما همان کسانی که چون نام خدا برده شود دلهایشان ترسان گردد و شکی بایان در برابر مصیبتهایی که به آنها میرسد و آنها که نماز را برپا پا دارند و از آنچه روزیشان کرده این انفاق میکنند والبد شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا قَصِير فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ ذالک قربانی لكم لعلكم تشکرون شتران فربرا در حج برای شما از شعائر الهی قرار دادیم در آن برای شما خیر و برکت است پس هنگام قربانی در حالی که بر پای اند نام خدا را بر آنها ببرید آنگاه چون پهلوهایشان بر زمین افتاد از گوشت آنها بخورید و فقیران قانع غیر سائل و فقیران سائل را اطعام کنید این گونه ما آنها را برای شما ران کردیم باشد که شما سپاس گذاری کنید لین ی نال ولا دماؤها ولكن کذالک تخفرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم و بشیر المحسنین گوشتهای قربانی و خونهای آنها هرگز به خدا نمی رسد ولی کن پرهیزگاری شما به او می رسد اینگون خداوند آنها را برای شما مسخر کرده تا خدابند را به شکرانی آن شما را هدایت کرده است بزرگ به و نیکوکاران را بشارده. این الله یدافع عنیلذین آمنون این الله لا يحب كل خوان کفو یقینا خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند. بیگمان خداوند هیچ خیانت کار ناسپاسی را دوست ندارد. اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر به کسانی که با آنان جنگ می شود، اجازه داده شده است از آن روی که مورد ستم قرار گرفته اند و یقینا خداوند بر یاری آنها تواناست الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن یقولوا ربنا الله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 الله لقوی عزیز همان کسانی که به ناحق از دیارشان رانده شدند جز این میگفتند، پروردگار ما الله است و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمیکرد. بیگمان دیرهای راهبان و کلیساهای مسیحیان و کنیسه‌های یهودیان و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می شود بیران می و مسلما خداوند یاری می کند کسی که دین او را یاری دهد بیگمان خداوند قوی پیروزمند است الذين امكناهم في بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله همان کسانی که اگر در زمین به آنها قدرت و حکومت بخشیم نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و سرانجام کارها از آن خداست و ای یکذبوا کقد کذبت و عاد و سمود. پیامبر اگر این قوم بت تو را تکذیب می‌کنند غمگین نباش به راستی پیش از آنها قوم نوح و آد و سمود پیام برانشان را تقذیب کردند و قوم ابراهیم و قوم لوت. و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوت و اصحاب مدین وكل بموسى بموسا فأملیت للكافرین کم فكيف كان نكیر؟ و حاب مدین و موسا نیز شد پس به کافران مهلت دادم آنگاه آنها را فرو گرفتم پس بنگر انکار و عقوبت من چگونه بود؟ فکا این من قریت اهلکناها و هی ظالمت فهی خاویت على عروشها؟ فهی قاویت علی عروشها و بئر و قصر مشید پس چه بسیار آبادی ها را در حالی که مردمش ستمگر بودند نابودشان کردیم پس اینک بر سقف هایشان فرو ریخته و ویران شده است و چه بسیار چاه پر آب که بی حاصل مانده. چه قصرهای برافراشته برفررای استوار که بی صاحب مانده است فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ آیا آنها در زمین سیر نکردند تا دلهایی داشته باشند که با آن حقیقت را دریابند یا گوشهایی که با آن اخبار گذشتگان را بشنوند پس بیگومان چشمهای ظاهر نابینانه می بلی کندل که در سینه نابینا میشود شود و یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده و این یوما عند ربک که الف مما تعدون و آنها به شتاب از تو عذاب می و خداوند هرگز بعدی را خلاف نمی کند و بیگمان یک روز نزد پروردگارت مانند هزار سال از آنچه است که شما می شمارید. و که این من قریت امليت لها و هی ثم, ثم اقضتها و الی المصیر و چه بسیار آبادی ها که به آنها مهلت دادم در حالی که مردمش ستمگر بودند آنگاه آنها را گرفتم و بازگشته همه به سوی من است قل یا الناس انما انا نذیر مبین ای پیام بر بگو ای مردم جز این نیست که من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم پس کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند برای آنها آمرزش و روزی نیک است والین تععاوتی آیت معجیزی اولا اینکه آصح و کسانی که مبارزه کنندان در این آیات ما تلاش کردند و پند داشتند که ما را به سوح میآورند، آنان اهل دوزخ هستند.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 فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحكم الله آیاته و ما هیچ رسول و پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه چون آیات ما را تلاوت کرد شیطان در تلاوت او چیزی القا کرد آنگاه خدا آنچه شیطان القا می کند از میان میبرد، سپس خداوند آیاتش را استوار و محکم می دارد و خداوند دانای حکیم است لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین في قلوبهم مرض و قلوبهم و این الظالمین لفی شقاق بعید تا خدابند آنچرا که شیطان القا کند آزمونی قرار دهد برای کسانی که در دلهایشان بیماری است و آنهایی که دلهایشان سخت است و بیگمان ستم کاران در مخالفت دور هستند و لیعلم الذین اوتو العلم ان... انه الحق من ربك فيؤمن به فتخبط له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقم اتا کسانی که به آنان دانش داده شده بدانند که <تصفح و انت Hello everybody> مسلما آن قران از سوی پروردگارت حق است <besonders> پس به آن ایمان بیاورند، آنگاه دلهایشان برای آن حق خاضع گردد و یقینا خداوند کسانی را که ایمان آوردند به راه راست هدایت می کند. یزال الذین کفروا فی مریت منه حتی الساعه حتی تأثیه هم الساعت بغتتا او یأثیه هم عذاب یوم عقیم و کسانی که کافر شدند همواره در آن شک دارند تا آن ناگهان قیامت فرار سد یا عذاب روز نحس بر آنها فرود آید الملك يومئذ لله يحكم بینهم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم فرمان روایی در آن روز از آن خداست میان آنها داوری میکند پس کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند در باغ‌های پرنعمت هستند. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مهین. بچه‌سانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، برای آنها عذاب خار خوارکننده است.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 و کسانی که در راه خدا هجرت کرده اند کشته شدند یا مردند مسلما خداوند به آنها روزی نیکویی می دهد یقینا خداوند بهترین روزی دهندگان است هم الله حلیم بدون شک آنها را به جایگاهی وارد می که از آن خوشنود باشند و بیگمان خداوند دانای بردبار است ذلك و من عاقب بمثل ما عوقب بهی ثم بغی علیه لینصرنه الله این الله لعفون غفور قام این است و هر کس به همان مقدار که به او ستم شده مجازات کند سپس بر او ستم کنند بدون شک خداوند او را یاری خواهد کرد یقینا خداوند بخشنده آمرزنده است ذالک بی ان الله یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی الله این یاری الهی به خاطر آن است که خداوند شب را در روز داخل می کند و روز را در شب داخل می و بیگمان خداوند شنوای بینا است ذالک بأن الله هو الحق و ان يدعون یدعون من دونه هو الباطل و انما یدعون من دونه هو الباطل و الله هو العلی الكبیر این به خاطر آن است که خداوند حق است و آنچه جز او به خدایی میخوانند باطل است و به راستی که خداوند بلند مرتبه بزرگ است الم تر أن الله أنزل من السماء ماءا فتصبح الأرض مخضره ن الله طف خبرآیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد سپس زمین بر اثر آن سبز و خرم میگردد بیگمان خداوند باریک بین آگاه است له ما فی السماوات و ما فی الارض و الله له هو الغنی الحمید در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و بدون شک خداوند بینیاز و ستوده است ألم تر أن الله سقّر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أنتفع على الأرض إلا بإذنه اِنَّ الله بِالنَّاسِ لَرَوْفُ آیا ندیدی که الله آنچه را در زمین است به خدمت شما گماشته است و نیز کشتی ها به فرمانش در دریا روانند و آسمان را نگه می دارد که جز به اجازه او بر زمین نیفتد بیگمان الله نسبت به مردم دلسوز است؟ ووقو الذي احياابم تم میی تکم توم يحیکِ النسانل کپور و اوست که شما را زنده کرد سپس می و آنگاه بار دیگر زنده میکند به راستی انسان بسیار ناسپاس است. لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الامر ورد الى ربك انك على هدى مستقيم برای هر امتی آیین مقرر کردیم که آنها بدان عمل می‌کنند پس نباید در این امر با تو به ستیز برخیزند و به راه پروردگارت دعوت کن زیرا تو بر راهی راست قرار داری الله اعلم بما تعملون و اگر با تو مجادله كردند پس بگو الله به آنچه انجام میدهید داناترس الله بينكم يوم فيما كنتم فيه تختلفون الله روز قیامت بین شما در مورد آنچه در آن اختلاف می کردید داوری کند علم تعلم أن الله يعلم ما فی السماء والأرض ان ذالک فی کتاب علی الله یسیر آیا ندونسته‌ای که الله آنچه را در آسمان و زمین است میداند بیگمان همه اینها در کتابی ثبت است مسلما این کار بر الله آسانه است و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ما ليس لهم به علم و ما للظالمین من نصیر و آنان به جای الله چیزی را میپرستند که او هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده است و بدان آگاهی و شناختی ندارند و برای ستمکاران در برابر عذاب الهی هیچ یاوری نیست و اذا عليهم علیهم آیاتنا بینات تعرف پی وجوه الذين كفروا المنکر يكادون یستون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل بشر من النار وعدها الله كفروا وبئس المصير. و هنگامی که آیات روشن ما برانان خوانده می شود در چهره کسانی که کافر شدند آثار ناخوشی و انکار را میبینی نزدیک است بر کسانی که آیات ما را برانان می خانند حمله ور شبند. بگو آیا شما را به بدتر از این که در انتظار شماست خبر دهم، آتش دوزخ است که الله به کسانی که کافر شدند وعده داده است و چه بد سرانجامی است یا ایوه الناس قریب مثل فاستمعونم ای الذين تدعون من دون الله لن ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب مسلی زده شده است پس به آن گوش فرا دهید بیگمان کسانی را که به جای الله میخانید هرگز نمیتوانند مگسی را بیافرینند اگرچه همگی برای این کار گرد آیند و اگر مگس چیزی از آنها به ربایت نمیتوانند از آن باز پس گیرند آری طالب و مطلوب ناتوانند ما قد الله حق قدره ان الله لَقَوِيٌّ آنها خداوند را چنان که سزاوار اوست نشناختند یقینا خداوند قوی پیروزمند است الله یصفی <تصفيق> من الملائكة رسلا و من الناس <متصال> الله خداوند از فرشتگان رسولانی را برمیگزیند و نیز از مردم بیگمان خداوند شنوای بیناست یعلم <متصال> ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور آنچه را در پیش روی آنها و آنچه پشت سر آنهاست میداند و همه کارها به سوی خدا بازگردانده میشود یا ای کسانی که ایمان آوردید رکوع کنید و سجده ای کسانی که ایمان آوردید رکوع کنید و سجده کنید و پرورد را بپرستید و کار نیک انجام دهید باشد که رستگار شدید وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیكم ابراهیم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 فَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرِ و در راه خدا جهاد کنید چنان که سزاوار جهاد در راه اوست او شما را برگزید و در دین برای شما هیچ سختی و تنگنایی قرار نداد همان آیین پدرتان ابراهیم است. او پیش از این و در این قرآن نیز شما را مسلمان نامید تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم باشید پس نماز را برپادارید و زکات را بدهید و به خدا تمسک جویید که او مولای شماست چه خوب مولا و چه خوب یاوریز.